اللہ علیه رسول الله و آله الطيبين و یه روز متعرض از کلمات محقق اراقی راجع مسئله به اصطلاح مقدماتی که ایشون در باره اصول عملی یه ریختنده آوردن دیروز متعرضه مقدار از کلام میشن شدیم امروز فتمه کلام میشن رو عرض میکنم قبل از اون در بحث یکی دو سا مقدمه رو بایان فرمدن که مسئله لطیفی در مخصوصا برای برای نسبت بین اصول و بین امارات و بعض اصول لا پس در تسمه کلامشون میفرمایند و ان الحكم الموجود مجعول فی مورد الاصل انا مکان فی عرف شک به واقعی اشون در واقع اصول میگن اون موضوعش عبارت از شکه اصولا اصول چه؟ اصول محروی باشه چه اصول حکمی باشه در ظرف شک شد جهر شده این یه توضیح دیگری هم داره که من بردرز میکنم از مفاد امارات عبارتون اندرس حکم واقعی به خلاف اصول این مفاد ها عبارتون حکم ثابت به ظرف شکل حکم واقعی و به هاده جهه یسیر و مفاده ها مترخیران رفت بخیران این مفاده لعماله این مطلبی که ایشون در فرق بین اصول و عماله پی نفسه مطلب صحیحیه و اگر ما به تغییر دیگری دائما این مطلب رو برم کنم از کردیم که در هر موردی که شما بدخوردوسون با واقع باشه یا به اصطلاح دیگه واحد و واقع باشه اونجا مورده عماله و در هر موردی که برخورد شما با حدل علم باشه یعنی با حد اون صورت ذهنی که داریم، اون خود علم باشه اعماله باشه هر چی یعنی جایینه باشه اگر برخورد شما با اون صورت ذهنی شد، نه با حد واقع بلکه با حدل علم شما شود اینجا موردش مورد اصول یعنی در مورد اصول فرض بر اینه که حدل واقع بر شما مرشوف نیست خلاصه این مثلا مثل شما میدونی که زند زنده هست یا شخصی میاد قرار میده که در حرم بازیم مثلا خب این اخبار مثل به اصطلاح روزه پلیس به واقع که شما درک میکنیم میبینیم بازودن در حرم اما اگر شما ندانید مثلا دیروز میدانستید یا دو ساعت قبل میدانستیم در حرم بازیم الان نمیدونید این لحظه از شما سوال میکنن میگه دو ساعت قرار بودن در حرم باز روزو، هنوز باز باشه. این هنوز بازه این مفاد اصیله. یعنی اصولا شما وقتی به مراجعه کنید میکنید که واقع رو ندونید و واقع براتون مشخص نشه. این طبیعی کاره. و این شبه بعد یه توضیح نکتی لطیفتی هم در اینجا بعد عرض میکنم. و یکون و دلیل را فعند موضوع الاصل حقیقتا امکان علمیه و حکومتا امکان غیر علمیه و از کردم متعارف در بین علمای اصول اهل سنت هم تا اونجایی که ما میدونیم و علمای شیعه تا این دو غر نرخیه تقریبا بلکه یکم زودتر نسبت بین دو دلیل رو غالبا دو تا میرنستن یا تخصص یا تخصیص مخصوصا در بعد از زمان شیخ سالی دقیق تر قبلش هم هست این هست دیروز اشاره کرده دو تا دیگه هم اضافه کردن یکی ورود یکی حکومت ورود از یک جهدی شبیه به تخصصه حکومت از یک جهدی شبیه به تخصیصه وقت استلاح هم به این بینیم بذاشتن که اگر خروج موضوعی بشه حقیقتا این اسمش تخصص باشه یا تعبدن به نفس تعبود اسمش ورود باشه به تنظیر اسمش حکومت باشه حالا این چون در خداعزی همی اشاره میکنه بذاری در اونجا عرض بکنم مطلب اون وقت ایشون اینطور طور میخوانم که اگر شما علم پیدا کردین که مثلا فرسونی زین زنده است معلومی معلوم جای اصلی نیست میخوانی استثابه مثلا حیاتش بکنه علم به دوگه مرده از این جسدش داره جای استصاب نیست و اینجا واقعا دیگه جای نیست. چون شکی نیست کلا امکان علمی هم. و حکومت هم غیر علمی یعنی اگر علم نباشه مثل اماره باشه به نحو حکومت بله نحو به مقتضا تطمیم مرکش به الغا احتمال خطاب یست بطول علم از تعبودی به واقع ما دیروز و, و روزهای قبل از اول بحث کرارا این نکتر را ارز یکی از نکات اساسی ما هرچی زید تو کنیم بشه در ذهن آقایان خیلی ضروری و لازمه از کردیم و مرارا این سه بزرگوار مرموم آیا آزیا و مرموم و مرموم اصلا معنای حجیت و اصولا تطمیم کش میگونن چونه هست که میدارو نهنه بحثه که یه چیه تنجز چیه؟ تعذیر و تنجیز میدونن ادهی مثل مرحوم آزیاب و مرحوم نایینی و مرحوم استاد تطریم کش میدونن ادهی مثل مرحوم شیخ انصاری هم مثل عهد به کار برده با یک که خود بنده بدم اینه که تو زیاده جسا خیلی درست لیکن احتمال داره که بین مشهور اهل سنت حالا نه در همه امارات در جمعه از امارات جعل بدل بدونن جعل حکم بدونن حکم ظاهری جعل شده باشه نظام نرمو آزی هم میخواد نسبت بین علم یا مثلا اماره رو با دلیل اصل بگه مثلا اگه در یک جایی استصحاب اختزام بکنه که فرض این با مثال خیاف ثابت باشه به نهر تراخی ربایی افنام از معتبر که نخیار عرل خوب خوب اینجا استثاب به اصطلاح جاری نمیشه به بود از کردیم در کلمات قدمای خود اصحاب ما قدمای قدما نما از زمان سه مدری بعد و در کلمات احل سنت اگر استثاب جایی جاری بشه و خبری هم باشه معتبر بین اینها تا آرز میدونن اصولین ما آمدن بینه ها تا آرز و برداشتن معترض شن کسا تا آرزی نیست حالا ادهی قائل شدن تخصیص ادهی ها که نه حکومت این مخصوصا اخیره اصولی ها ببینید نقطه فنیش رو عرض بکنن نقطه فنیش اینه اونایی که بگن تخصیص مرادشون اینه در اینجا شما لحاظ نکنیم بین استصحاب و مثلا خبری که میگه من با مثال فرض بر این مثال معروف که تصوفن ایده از اهل سنت قابل به حرمت هم در باقی بعد از نقاع از دم و قبل الاختصاص خب عرض کردم سوالا کردن این مسئله از وقتی از فقه حنفی بیشتر شد مبناش استصحاب یعنی اهل هم این مسئله رو دارن. که بعد از نقا و قبل اقتصاد یه روال وقت هم از همون قرن اول او اول اول قرن اول اگه حوزه اخران نشده باشه قرن دوم که مسلم او هنیف و شافی نایی مسلم از همون قرن دوم که قرن اول و دوم که قرن فاقه هاست ات روایت نقل نکردن اهل سنت در این مورد از پیمن برکن رویتی نقل نکرد بخص رو داشن بر استثال اصلا استثام برن مطرح شد کسانی که استثام رو حجت میانسن در احکام کلیه گفتن حرمت بعد. کسانی که استثام رو حجت دیم داشن رو جوبه اصلاف رو قراره میکنن مستان جواز بعد دقیق فرموندی؟ روشن شد مسئله پس در اون مسئله حرمت برد و جواز برد مبتنیست بر مسئله استثام حالا ما در روایات ما زیادی از علمای ما علماء متاخر ما مثل فصل محقه نایین دیگران استثاب در شبات حکمی جالی میدونن خب سوال اینه چون ما روایت داریم به جواز چند تا روایت هم داریم نا یکی روایت به جواز داریم صحبت اینه که نسبت بین این روایت و استثاب چی؟ از کردن قدمای ما و اصولی نهل سنن تعارض میدیدن که استثاب حتی از ساتو براره از من این این بحث آن در این اصلا هدف ایشون از این مقدمه اینه که نسبت بین اینها رو بررسی کنه از نظر فنی نسبت رو بین لسان دلیل بررسی میکنن از نظر فنی اینجور وقت لسان دلیل اینه استثاب دلیلش اینه لا تنگوز یقینه به شک تو شما شک دارین که بعد از نقاعده آیا جایز هست یا جایز نیست؟ شکل دیگه استصال بگه اون حالت سابقه که حرمت بیان جاری وقتی اینا میان میگن که دلیل حجیت خبر واحد حالا ما چند تا خبر داریم خبر سنین داریم بر جواز اون دلیل خبر مفادش چیه؟ خوب دقیق کنیم من او ما نایین یا چون نایین استدلالش واضح تره من او نایین یه مفاد دلیل حجیت خبر اینه یعنی که شک و الغا بکن به چه معنی؟ وقتی خبر آمد فرس کنه 70% در شما حصول پیدا میشه فرس کنیم برمثال با خیلیم به حالات نفسی و به کمیت ریان بکنیم بعد شما مثلا اگه رفت 90% باشه فرس کنه حجیت عرفی نه قطعه اصطلافی حجت عرفی نایم میفرمانید که دلیل حجت خبر عد خبر سقه این است که الغا بکن این شکل رو این شکل رو برداره. اون 20% در برداره وقتی برداشته میشه 90% درست. اسمی روشه تطویم و کشم مرشن شد رو تطویم و کشم روشه این به لحاظ ظاهر کلام میشه به لحاظ نکته فنی همه ها عرض ها نعرض کرده مرموم آوازی ها استاد به کسانی که این مسیح که رفته هم حجیت و کش کشم کاشف تام بود حجت تامه کاشف ناقص بود حجیت حجت ناقص یعنی حجت کامل نیست ولیذا چون زاویه دیدشون کشفه میگن وقتی حج... کاشف ناقص حجیتش خایناهایی هست اون کاشف تام بشه لیذا حتی اگر گفت مثلا خبر زراره حجت هم یا حتی اگر بیرین تحبیر گفت که در برای باید داریم مزدگ شب حاله که حاله که با حاضر جالس بیمین فعلای که بها در جالس تحبیر اینه و که این مفاد واقعیش چیه؟ این مفاد واقعیش اینه که اگر از خبر زهاره برای تا هفتا درصد پیداشون شد معاملیت نمید در دقرد کنیم خب دقرد بکنیم تو بحثای قانونی درسته ما جانب لفظی رو مراعب میکنم اما یه بحثای قانونی گاهی خود ریشهی قانون ریشه حقوقی داره مثلا من چند بار کردم این که بگن احکان وضعیه قابل چهر نیستن مثل جزئیت، مثل شرطیت این مرادشو مشه لحظی میسا ولی خب در هم میگه جلت و صورت جزنده سلام خب میگه خب مشه نارد جلت و رکوعی جزنده سلام نمیشه بگه جلت تو رکوعی جزنده سلام اون میشه جلت و تهارت شرزنده سلام مشه، اون که میگه حتی اگه اینجو گفت جلت و تهارت شرزنده سلام جعلت ركوع چند بار هم مثال عرض کردم ركوع جزء مرادشون این نیست که این مشکل لفظی داره که اگر تسریع کردش حل نداره احکام ازیا قابل جعل مثلا بگیم این در اینجا جعل مراد اونا مشکل قانونی و حقوقی هستن مشکل مشکل قانونیه یعنی مشکل اینه که خود جزئیت قابل جعل نیست برای تسریع بکنه جعلت صورت جزء اند از این تسریع بالاتر این میگن این در واقع مفادش اینه اعتبه صلاحات مشتملتاً الاسوبه لب واقعش اونه عمل خورده به یک مرکب که این جزه شد کرد؟ اینی که یعنی احکام وضعی قابل جعل نیست مرادشون جهت لفظی نیست مرادشون جهت قانونی و حقوق یا بالا علام جهت معنوی مراد از معنوی در اینجا اونه پس در اینجا خوب دقت کنیم وقتی مرمون نایمی میگه مفاده و حجیت یعنی تطریم کش مرادش نیست که مثلا بی یک لفظ دیگه مراد تصمیم کردش اگر بگه حجتون اگر بگه قول زراره خود، اگر بگه علیه که باها در جاهز به هر تعبیری که بگه بقید. اون در لبش و در واقعش معنای رجوع به زراره این تصمیم کردش دقیقه تفسیر او برای حجیت اینه مثل تفسیر او برای مسئله یه جزئیت جعل جزئیات و شرطیت و اینها مانعیه خب اینو نکته رو دقت بکنید پس مراد لفظ نیست البته مرحوم لاینی به لفظم تمسک کرده لا العهد من موالین الله یا لا یم لحظه العهد از فی ما یروی عن شما باید شک نکنید ببینید شک نکنید میگه خب اینم همونی که ما معنای قانونی گفتیم لفظاً جلالت کرد معنای قانونی الغاء شک بود تطبیق کرد شد لفظاً گفت بخیرا نسبت رو خوب دقت بکنیم نسبت رو بین دو تا حساب میکنیم میخوام راه فنیشه بگه البته ما این راه رو بعداً توی مقام از احکام و استنباط احکام به کار می‌بریم من دیروز اشاره کردم شما تو پارلمان های جدید تو قوانین جدید توی در مقام جعل هم این راه رو ملاحظه میکنیم. مطلبی که شما می‌گی این توی حقوق جدید هم میان فرض که ما در فقهمون حالت استنباط داریم شما در قوانین جدید خلاص دارید حالت ابداع دارید. همین نکته است فرمودم نکته شیکی که نکته فندش یکی. من و آینی و بعد و استاد و دیگران هر توشون و آزی و بزرگ در اینجا اینطور معنا اینا حرفش که شما این دو دلیل نگاه بکنید لا قزل یقین به شک فرض شک کرده. از اونم رنگ گفته لا عذر لعهد ممنوع نفت تشدید نمیشه جای شک نیست خوب دقت بکنی یک دلیل میگه لا تن قضولیت بشه یعنی سابقا حرام بود حالا حالامو حرام یه دلیلی دلیل میگه مثلا شک نکن ببین نا نایی بین این دوتا رو مقایسه میکنه بین شک نکن و لا تن قضولیت تا حالا متعارف اصولی تا صدفه شد به از اصول محاصل باشه مبنانشون در اصول این بود که تخصیص میزنه تخصیص به این معنا شما به حالت سابقه مراجعه کنید شما به یقین سابق مراجعه کنید من در جایی که برشلافه او روایت باشه تخصیص میزنه لا تنقاضی یقینه به شک تخصیص خورد لازم را در عهد مبانو نسبت بین این دوتا لا خان قذلی قنه به شنگ ولا ليس سل شک سلکت نسبت بین, بین فنی فیل روچم شد اصلا الان در دنیای جدید هم که از کار بسیار مهم در او ملاحظه قوانین و مواد قوانین و نسبت اونها با همه. تا حالا نسبت اینجوری بود نسبتی که بود به این صورت بود که یا تخصیص هست یا تخصص. اونایی که میگفته اینجا تخصیصه اینطوری میگفتن شارع مقدس ما گفته شما با حالت صادقه مراجعه کن به شکت اعتناه نکن به شک از اون طرف شارع گفته شک نکن وقتی زراره گفت شک نکن پس در اینجا لا ینبقی لعهدم موالینات تشکیل این شک رو برداشت دیگه جای لا تام گزلی یقین به شک نیست، حالا تام گزلی یقین رو شک. شما شک داشته روشین. اثبات در لسان ادله فرض موضوع، موضوع قبل از حکمه. یعنی شما باید یقین مثل اکمل آلم باید که عالم تا شما باید یک یقین داشته باشید، یک شک هم داشته باشید، و شارع به شما به یقین واقعی بهمون روشین شود. اما وقتی اومد گفت لیس لک انتش، یعنی شک نداری. یقین داره دیگه شک نداری یقین داشتی صاغرا حرامه اما دیگه شک نداری چرا شک نداری چون روایتونه که الان حلاله نسبت به نوازه پس تا حالا تفسیر این بود که نسبت بین این دو دلیل نسبت تخصیصه یعنی لا تنقض اليقین به شک الا اداره اشاره اشک کی را اشاره اشک به قول عاده فرمود که اگر عادل گفت دیگه شک نداری پس شما فقط یقین دارید شک نداریم دیگه لا فتنه‌گزری یقین به شک جور نمیشه. حسین طبسیفان این سرن از زمان مرحوم شریع ارسلان در اصطلاحات فقهای ما تقریبا این مضمون در کلمات در بحث اینا دین در جوامع مقاصد آمده به زوار راشد گفت که بحث حسابارش مترازه کلمات ایشون نشود. در اونجا و بعد ها یواش در کلمات اصحاب آمد. لكن از زمان شیخ این محدودتر و روشنتر شد از زمان شیخ این واضحتر شد و اون از زمان شیخ این آمد که این نسبت تخصیص نیست اما اگر گفتن تخصیص چیه؟ نیست تصرف در حکمه مثلا گفت عرف العلماء لا توفسا العلماء این تخصیصه خب یعنی عالم فاصل فاصل عالمه اول گفت که اول علمو یا جمعی علمو آلم فاسق عالم هست لیکن حکمش برداشت شده بخاطر فس اما این تخصیص نیست این در حقیقت یک نوع تفسیره یعنی گفتگاه تنگوزی لقیم یعنی بشن در صورتی که خبر سقه آمد شک نیست این نوع تفسیره یا به قول حالا بعضی تصورشون اینه که تخصیص و حکومت روحن یکی اصلا حکومت یک نوع تعبیر ملایم با جوان و با عاطفی یعنی اون جنبه چیز نداره اون جنبه عامریت توش نیست تو تفسیر جنبه عامریته مثلا لا چون فساق اما تو حکومت جنبه عامریت نیست میگه لا ینبغي لك تشک با گفتن خبر الصدق شک نداری حالا یا این تفسیر یا همین تفسیری که برای مازیه و دیگران داره آزیام در اینجا مثل مرحوم استاد، البته استاد در مباحث تعارض این مطلب رو واضح تر نه آزی اینجا به نهوه اجمال آورده. اون اخی اینا آمدن یک چیز دیگه هم کرد، پس رنابراین بین شد که نسبت بین لا غزل یقینه به شک، یعنی این کلمه شک، با لیس لک فی ما یروی هم ناسقات این نسبت حکومته حکومت رو بیشتر به جنبه شرح و تفسیر گرفتن و بیشتر ناظر و, و, و اصولا ناظر به جهت موضوع گرفتم البته ناظره به موضوع گاهی به نحو توسعه گاهی به نحو تضییق مثلا گفت اکمل المل علما ولی اون انسان متقی زاهد رو درس خونده باشه من این از علما میدونم این توسعه است یا بگه عالم فاسق رو من عالم نمیدونم عالم نمیدونم یه اتهام نکنم یا عالم نمیدونم این به نحو تزییقه حکومت گاهی به نحو تزییقه گاهی به نحو توسعه است اما تخصیص هم میشه به نحو به, به اصطلاح تزییقه مگرد در اونجایی که سلم و بزنید که خب با هم تو میکن حالا کیف مکان تا انشاءالله اینجا روشن رو شد وقت نحوی حکومت به چیه؟ یک دلیل میاد به عنوان شاره موضوع دلیل اسمش حکومت. یعنی شاره آمد با یک تصرفی شک شما رو برداشت گفت لیسه به شک مثلا ان نمشکو فی شیء لم تجزهو فإذا جزهته فشکو کلیس به شیء ببین، همین حکومت اینجا هم تصویر کرده. شما الان در سجده هستین شک کردن رکوع کردن یا نه خب اصل عدم رکوع دیگه اساسا آدم رکوع جایی میشه قائلش اینطوری دیگه شک اینطوری در حال قیام و قراعت بودیم از قیام و قراعت اما این به سجدی رو کو انجام دادیم اون حالت سابقه تون قیامه شما اون حالت سابقه رو نیم دونیم منتری به روکو شد یه از قیام آمدیم خب استثاثا و عدن روکو جاری میشه مه چرا؟ چون لا تنوازیل به شک؟ تو یقین داشتی در حال قیام که روکو نبوده حالا شک میکنی لا تنوازیل یمینه بشه. درست این روای چی میگه؟ میگه این نمش شک و فیشه این لم تا جزو فعدا جزته او فشک و که بشه بیریم شک و که بشه, بشه این شک و که لیسه بشه اون لا ترموزه یعنی نبشه که برمیداره یعنی چی برمیداره یه جه روجو به استثاب نیست میگه شک نیست رکن استثاب یقین و شک بود شارع میاد این تصرف رو میکنه لذا بناشون به این شد که اگر شارق یک تعبودی کمت رو گفت بکنیم به مجرد تعبود یک چیزی برداشته شد دو مجرد تعبود اسم این رو ورود گذاشم اما اگر به مجرد تعبود برداشته نشد نیاز به تنظیر بود یعنی اضافه بر یک تعبود اول به اسطلاح بردربته یک تعبود دوگم هم میخواد بگه که لیثه بشی یک تنزیل میکنه شک رو بر داره اگر این طور شد اسم این حکومت این مراد آزه پس مراد آزیا خلافند مشهور بین علما که و بعد از شیخ انصاری مطلب رو افتاد تو اوضاع ما حالا خلاف ایشان نیست ان تا الله اگر وقت و فرصتی کردیم امروز که غتن نمیشه فردا اون نکته اساسی که بنده حسابات در بحث و آيون داریم این است که این نسبت سنجی درستین حرف اشکال من اینه این نسبت سنجی که لیسل اهل من موالناف تشقیق این تشقیقی در این لسان لسان این رباطمنده بالاتر از باذ به شک این دو تا رو نباید سنجی. سنجید ان شاء الله فردا یا پس فردا دور میذورید این دیگه اشکال اساسی است که ما بین آيون داریم ایشون می که لعن نهوب به مقتضا تطمیم کشف ارز کردم این نکته رو خوب دقت بکنید میار اساسی پیش این سه بزرگوار مرجع حجیت حقیقت حجیت عبارت از تطمیم کشف یا به اعتبار دیگه ایشون احتمال خلاف ارز کردم مروم ناینی اضافه بر این که این مبنار ارفی و اغلایی می دونن. اضافه بر این بلکه عقلی میدونن اضافه بر این تمسک به ظاهر اون حدیث به اصطلاح مکاتبه هم که از مکاتبه موندیه قاسم نعلاییه همدانی که لا عذر العهد نیست لا احد من موالینا فتشكی فی ما میگه نگاه کن اینجا شارع مقدس شک رو برداشته خودش بهنه حجت ملی همین برداشتن شک بله یسوتل علم الواقعی علم و تعبودی بالواقع و بهی موضوع و شک فی موضوع الاسول اون لا تنوازه یقینه به شک چون باید در استثاب یقین باشه کم باشه این برداشته میشه ولو تعبودن و تنزیرن فلا مجاله لجریان ها فی قبال الاماره که یقینه همه اتنافی از دیشون تعبید تنافی کرده چون به اصطلاح اون تا مستقر نیست قدما این رو تفسیر به تخصیص میکردن به همین نحوی که کردند. می میگفت شما به حالت سابقه مراجعه کنید مگر روایت معتبر برخلافش باشه اینجور جرم میکردن الا معنام میکردن اینا تفسیر رو عوض کردند و ها دا هواللدی افاده و شیخ قدس رو به فرائدی بله الا بل ازو ملقو شیخ هم گفت فهو حاکم على الارض لا مخصص للو اعلان عنین الحكومه الا ما یکون اینو من توضیح دادم عرض کردم اینو متناسبش بیشتر اول بحث تعارضه اگر خواستن توضیح بیشترشو اونجا مراجعه کنن که من مواخذه دیگه‌هام شاهد بودن الا ما یکون را فهم موضوع آخر تعبدا و تنزیلا یعنی اگر خروج یکی از موضوع دیگری شد به خود تعبد رو ورود میدونم به منزله تخصص اون واقعی اگر نه اضافه بر تعبد تنزیلی تو کارو حکومت میدونم فی قبال الورود النادی عبارتون انرافعیت احد دلیلین به انایت تعبده به به مجرد تعبد البته لموضوع الاخر وجدانم فی قبال تخصیص الراجع لا تخصص از راجل و خروج فردم موضوع آخر تکلی نه. بله بلا انایت بوده بعد ایشون متعرض شدن بعد لخت ساسد این رو که اقسام حکومت چند تاست ایشون در اینجای اشاره به اقسام حکومت میکنن انبان یکون نازم لا رفع موضوع آخر و تزیغ دائرتی بعد رو یکون شنوع و توسعه این هم خب از که می خارشون از بحث بحث در این قسمت نبود بله بله بعد می فهم توصیب و می فهم منداله که, منداله که باب الامارات به قیاس الالعدلت المعخوز فی ها الالم موضوع اندل حک تماما او جزان او شرطن این یه است که در اول قهد گذشت الّتهون بحثم در بحل خودش هم تصویر تسربش به اصطلاح کمی آیین بحث کردن مشکلش شده به نظر ما مشکل ندارم و خب به سخت کردم یه بحثی گذشت در اول بحث قطع گذشت شیخ قدس الله نفسه بعد از اینکه بحث رو به دو قسمت تقسیم کرد قطع تاریخی و قطع موضوعی ایشون فرمودن مثلا امارات خبر واحد خبر حجه این قائم مقام قطع تاریخی میشه اما قائم مقام قطع موضوعی نمیشه چون در بحث موضوعی، قطع موضوعه، بر از هم خبر واحد بیاد، قد پیدا نمیشه. مراد از قطع تاریخی در جایی است که قطع اصلا تریویته صرف داره، رابطه موضوع نداره. معیارش هم ارشکره. هر جا که حکم رو واقع بره قطع تریویته، الان لازم شد خیلی بحثی می‌خوام. هرگه غلام تشرب الخمر، اگر شما قطع پیدا که این خمره یا جول است، ارشکره که این نه، این به صلات در این جورجیها قائل تری میشه. در هر جا که اتباع واقعی رو خود واقع ارثی میشه قائل تری در اونجا جا قائل و در هر جا قائل در لسان موضوع آمد میشه قائل موضوعی مثل لا محتوی آل خمري لذا محبوب شد میگه اگه قفلات هشدار خن اگه قصد پیدا کردی نه و خام بخوری امارات مات ار مودا و اما اگه قفلات هشدار محتوی آل خمريه اگه قصد پیدا کردی نه و بخو اما اگه امارات بود نشکل نداره چون آنها محتوی نداره. مخطو الخمریه با اماره مخطو الخمریه نمیشه این بحثی بود که شیخ گذشت بعد از مرحوم شیخ مثل مرحوم ازیا مثل مرحوم ناینی دیگران آی خوی اما در گفتن قطع موضوعی هم دو جوره یا به عنوان صفتیت موضوعه یا به عنوان طریقیه مثلا گفت لا تشوخ مخطو الخمریه اگر به عنوان صفتیت باشه بله اماره قائم مقامش میشه اما همینه که موضوعی که در لسان دل شده به عنوان طریقیت عرض شده باشه اینجا قایم مقامش میشه این برسی بود گوده طبعا در اینجا شد بین احنا که اصلا این تقسیم درسته یا نه که گایی طریقیته گایی صفتیته این گفتن نفیل این درست نیست این چیزی نمیشه هم موضوع باشه هم طریقیت نمیشه بحثش بودش بگه عرض و یه مقداری بحث سنگین کردم. اون بخ... آنی که میگن میشه به نحوه طریقیت باز گفتن یا تمام اون یا جز الموضوعه یا شرطه بود تقسیمات دیگر انصافه کردم. مرحوم آقا زیاد میگه میشه و قائل هست که اگر به نحوه طریقیت بود امارات مقامش میشه این چون بحث گذشت من میخوام میخواهم باز باز کنم با بحث گذشت تکرار بودم من فقط به نحوه اشاره هست کردم و ما عرض کردیم صحیح اینه که این میشه اشتباه نداره بلکه عرض کردیم صحیح اینه که قطعی که در بابه به اصطلاح امتصال هست این قطع موضوعی تاریخی نیست که مرحوم شیخ را دیگران فرمودند بلکه موضوعی استشان پیش واقلا به اضافه بر اون واقعا هست دیگه بحثا تکرار نکنم شما وقت ما دیگه کفایت نمیکنه بله لذا فرمود که و من که بابل امارات به قیاس للعدلت المخخوضت فی حل علم موضوعن للحق تماماً او جزئن او شرطن که قولی مقتوق الخرمی یه هم شروعه الى آخری مبل بعد اشون میفرماید لتطفیم لتطفیم کشف ها از هم فی دارت الموضوع و یس بطول علم متعبدی غیر ان حکومت فی مثال اول ظاهریتون و فسانی ثانی واقعیتون اینم یک تحصیل که این. این که ایشون مثال شما قبول بکنیم محل اشقالشون دیگه بخواید مناقشات ارزشتون میکشه اما این رو من اصل که شو میگم بعد حالا در حکومت تا اینجا دو جور شد حکومت به نحو تضییع حکومت به نحو توسعه در کلمات مرحوم نایینی و اینجام آغازی ها و دیگران باز دو نوع دیگر اضافه کرده. این حکومت که منحبه تزیر یا توسعه است گای حکومت واقعی است حکومت ظاهری است در هر دو. البته در اینجا آغازی ها پر بین علم تریب و موضوعی گذاشته واقعی و ظاهری ناکه معروف مرحوم ناینی حکومت ظاهری رو در جایی میدونه که لسان عدله باشه یعنی حجیت باشه چون حجیت عمر ظاهری است مثلا اگر گفت خبر واقع هجته خبر معتبر هجته اینجا حکومتی که میده حکومت است. اما اگر مثلا بگه ال ال این حکومت واقعی است یا به نحو توسعه یا به نحو تضییر من سابقا هم یک جایی بحث و خیلی در اول زن دیگه هم تکرارش طولانی است ما حکومت ظاهری رو قبول نکن چون حجیت به معنی کارمون گفتن قبول نکن حکومت ظاهری رو قبول نکن واقعیش قبول ظاهری بشه بله و لمنهاده الجهه قلنافی اول کتاب به قیام الامارات مقام القطع المعخوز فیل طریقا به نحوه تمامیه اول جزیه به شرطیه خب خود الان این محشی قالبه سخت نیست آغازیه ما قایر شد راست این مطلبیشان درسته عرض کردم معارض اساسی مثل مرموم نایی نیست که اصلا یه بحث درست نیست نمیشه هم موضوع باشه هم به نحوه طریقیه درخص شده باش این بحث ها گذشت ما ارز کردیم درست از واقع هست نه اینکه درسته هم بحث با بله. بعد کما انهون نلت... لذارکه نلتز مایزم ارز عز کردم در این مقدمه ایشون مباحث متعددی رو مطرح کردن یه نکته دیگری بازیشون مطرح فهمودن شما رو ممکنه ما به این زودی ها تو نرسید اینشالله خواهیم ارز خواهیم کرد این نکته در تنبیهات استثاب خواهد آمد. تو تن بیاد استصحاب آیان متعرض این نکته شدن، نو توی درسی هم هست. البته آقای متعرضی این شدن به روی قواعد ما ذکریم از بحث هواتون این مطلب در میاد. که حالا حرف خودم رو نمیخوام بگم با توی میگیش. چون آزیا اینجا سه چهار صفحه جیبی موضوع نشده. مطلب آزیا مطلب درسیال من جدی ما میگم آزیا گفته اصولی این گفتن. بحث اصول اصولی اینه. لا یقینه به شک در باب استصابه صحبت اینه که شما اون حالت سابقه رو باید یقین داشته باشید تا استساب بکنید یا نه اگر حالت سابقه به حجت ثابت شده بازم میشه استساب بکن مثلا تارتن یقین دارید مثلا لباس پاک خودتون شدید بعد درو شک میکن خب استساب تا حالت شده درست تارتن نه بیانه آمد مثلا آقای خویی که خبر سقه در موضوعاتان خبر سقه گفتیم لباس پاکه یروز بعد شک کردند ندیدش شدیار نه اینجا استثصال جاری میشه یا نه. اینجا شبه کردن که شما از اول یارین نداشته این خب کوپریانه میادی دیگه حجت بود یارین که نداشته لاتهن بازی یارینه بشه جاری نمیشه. این شد تنبیات استثصال خود که یقین در اینجا مراد عامل از هنده داره و درست هم از این باد لکه ما اضافه بر این به بعض از روایات رم تمسه کردیم حالا این شد این بحثش رو خصوصیاتشی که شاید ما میتونیم در وعده توان میشه و هم تون میگیم کما انه ولذالکه نلتزم ایذن به کفایت مجرد قیام العماره علی الهد فی جرایان الاستصحاب حکم موضوع فر نمی‌کنه مثلا یه حکمی ثابت شد مثلا من باب وجود وجوب نماز جمعه در زمان امام محسوب ثابت شد به روایتی امام فرمود واجبه حالا در زمان غیبت استصحاب می‌کنیم ولی اون اولی شجینی نبود اماره بود تقصیرم اگر و در احکام کلی جالب کنیم بسید. یعنی به عبارت اخرقا آمین مراد از یقین در این روایت لا تنقضی یقین مراد خصوص یقین نیست مراد حجته چه حجت به قول مرحوم آی منجله که مراد یقینه چه حجت مجعوله که امارات خوشن خبر واقعی باشه در قصد کرده یعنی؟ مرحوم آی آزیان بگه نکتش چیه؟ نکتش همین حکومت دی. لا تنبذ اليقين پس اگر ما به اصطلاح خبری آمد یعنی که این نجسه مثلا ایشون میگه لیس لعهدل مثلا تشکیک نکنی بگینه حجته مثلا در روایت داره که الاشاک لو علا داره تا او تقوم به البینه ببینید قیام البینه مثل علم قرار داده شده پس اگر بینه آمد این نجسه دو روز دیگه هم شک کردن استفهام نجاست بکنه دلیل اماره میاد اون یقین رو هم توسعه بده روشن شد دلیل اماره میگه اون لاتنقض یقین هم ام از یقین وجدانی درست هم هست این مطلب درسته ان در الله در میارز که این مسائلی که واضیه جوده از اول قطع نگاه کنیم تا آخر اصول عملی و توارث یک اشاره است به تمام ارخاس بله بلا افیا جنلی ال یقین وجدانی به فان العماره عماره به اصطلاح در احکام میگن گوییم در موضوعات و و کذلک بیینه فرق میکن در موضوع خارجی اینطوره اختصاص به عماره داره بحث اشتباه اشتباه نشه فان العماره به دلیل ادل ال اعتبارها یوس ادارهت یقین الذي اخذ رکنا فی الاستصحاب بما يعم من یقین تعبدی بلا حاز اثر و حرمت نقد کما کارنزل عماره المخالف للحادث ال السابقه موجبن موجبتن دکان نقضه بها نقضن به یقین لا بشن تا اینجا راجه به صحبت آغازی ها مبنایشون بعد ایشون میان روی مبنای جعل بدل هم بحث میکنن چون جعل بدل قبول لداره اما به نحر سنت این مبنا بوده این روی مبنای تشکیم کردش آیا روی مبنای جعل بدل هم حکومت تصیل میشه یه مقدار ایشون به اصطلاح بحث کردن چون بحث فرضی این قسمت نیمیخونه بقیه مطالب ایشون رو ادامه میدیم انشاءالله شاء تعالی و صلی الله علیه و محمد خیلی فلسفی کننده از این قسمت دیگه روی مبنای این مبنای ما متعرض ان مطالب بعدی ایشون میشیم